علایدین، سفر 645 دردی چونین موزی و چونین آزارنده در زندگی نکشیده بودم روزی که قرار بود شمس کیمیا را به زنی بگیرد نتوانستم در خانه بمانم توی قفسه سینه نوعی سنگینی توی سرم انگار هم همه بود داشتم خفه می شدم دلم برای خودم میسوخت. مشتی به صورتم زدم تا مثل بچه ها زرزر نکنم و نزنم زیر گریه و بارها پیش خودم تکرار کردم دیگر پسر پدرت نیستی دیگر پسر پدرت نیستی مادرم نیست پدرم هم و دیگر کیمیا هم نیست. در این خانه میان این همه آدم تک و تنهایم. باقی مانده احترامی هم که برای پدرم قائل بودم دود شد و به هوا رفت. فکر می کردم دوستش دارد. اما نگو به تنها چیزی که فکر می کرده منافع شمس بوده. وگرنه چرا باید کیمیا را به همچمردی می داد؟ لازم نیست نابغه باشی تا بفهمی از شمس شوهر در نمیآید؟ بله، پدرم کیمیا را فقط برای خوش شمس از خوشبختی محروم کرد. البته مرا هم با او. تمام روز گوشه نشستم و رفت آمدهای توی خانه را تماشا کردم. تدارک عروسی دختری را سیر کردم که میخواستم بگیرمش. اتاق هجله را از سقف تا کف تزین کردند. برای دور کردن تایفه اجنه کندر سوزاندند. شاهشان اینجاست. مگر جن بهتر از شمس پیدا می شود دم قروب دیگر طاقتم تاق شد دیگر نمی توانستم این شکنجه را تاب بیاورم به طرف در رفتم برادرم از پشت سر صدایم کرد علا دین بیست کجا می روی که به صورتش نگاه کنم گفتم امشب خانه ارشاد اینها می مانم. گفت مگر به سرت زده در همسایه نمیپرسند شب عروسی چرا خانه نیستی تازه اگر پدرم بشنود خیلی ناراحت می شود گفتم پسانهایی که پدرم ناراحتشان کرده چه میشوند گفت منظورت چیست گفتم مگر نفهمیده ای پدرم فقط برای خوش کردن دل شمس برای آن که دیگر از این خانه نرود این عروسی را تدارک دیده کیمیا را توی سینی نقره گذاشته و به آن مردک نمک به حرام پیشکش کرده برادر بزرگم لبهایش را به هم فشار داد گفت اشتباه می کنی. تو فکر می کنی کیمیا را دارند به زور شوهر میدهند. در صورتی که خود کیمیا بود که گفت میخواهد با شمس ازدواج کند. پرخاش گفتم: مگر چاره دیگری هم داشت، برادرم دستهایش را بلند کرد. البته که داشت. تو را به خدا مگر نمیفهمی کیمیا شمس را دوست دارد عاشقش است گفتم عجب دروغی دیگر پیش من از این حرفا نزن صدایم مثل قطعه یخی که تحمل باری را ندارد که رویش شرق شرق چرخ می‌کرد سلطان ولد گفت احساساتت چشمهایت را کور کرده، حسودی می کنی، اما از حس خباستامیزی مثل حسادت هم می شود به شکلی سودمند استفاده کرد. قاعده سی و در این زندگی فقط با تزات که می توانیم پیش برویم. مؤمن با منکر درونش آشنا شود ملحد با مؤمن درونش شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسد پله پله پل پیش می رود و فقط تا حدی که تضادها را پذیرفته بالغ می شود برادر خودم جلوم ایستاده بود و سخنان گهربار مردی را نقل می کرد که دشمن خودم میدانستمش. این آخرین ای شد که کافس را لبریز کرد. گفتم نگاه کن ببین چه می گویم. از دست این صوفی بازی ها زله شدم. تازه چرا به حرف تو گوش کنم؟ اصلا باعث و بانی همه اینها خودت هستی. باید میگذاشتی شمس همانجا توی دمشق بماند چرا برش گرداندی اگر اوزا به هم بریزد که حتما میریزد تقصیرش به گردن توست رنگش پرید آن لحظه اولین بار بود در عمرم دیدم برادرم از من و از کارهایی که ممکن است از من سر بزند میترسد چیز غریبی بود که آدم بتواند برادر بزرگترش را بترساند اما بدم نیامد از کوچه پس کوچه های بوگندو به خانه ارشادین ها رفتم تا کسی در این وضعیت نبیندم هر کاری میکردم فایده نداشت باز جلو چشمم شمس و کیمیا را می دیدم توی یک اتاق توی یک بستر وقتی فکر کردم شمس با آن دستهای زمختش رخت عروسی کیمیا را در میآورد و تصاحبش می کند دیگر نتوانستم جلو خودم را بگیرم. اشکم سرازیر شد. مرا به چه روزی انداخته بود؟ این مرد خیلی وقت بود پایش را از گلیم خودش درازتر کرده بود. باید فورا کاری می کردم.